هیبنوتیزم چه چیزهایی نیست؟ این یه سوال خیلی مهمه که من براتون مطرح میکنم تا به این فکر کردید که چه تصوراتی در روی هیبنوتیز تو ذهنتون شکل گرفته و حتی همه رو میگم. اما قطعاً عموم مردم کسایی هستن که تنها نقطه تماسی که با هیبنوتیزم و اینها داشتن یه سری فیلم های یا هالیوودی بوده یا یه فیلم اکشنی بوده که یه دیکش یه سارقی میره مثلاً یه نگهبانی رو هیبنوتیز میکنه وارد بانک میشه یا نمیدونم یه مقدار پولی رو میدوزده یا کارهای مختلف اینجوری میکنه و عیبی نداره اینها هم یه جورایی غلط نیستن یعنی هیبنوتیز میتونه مثل یه ابزار مخرب هم استفاده بشه اما به صورت کلی در سطح جهان و در سطح جامعهمون همون نگاه هایی که به هیبنوتیزم هست خیلی عجیب غریب و غیر واقعیه. نگاهی که افراد به هیپنوتیزم بران یه علم خاص یا مثلا یه چیز وحشتناک و ترسناک و یا حتی یه سریا دیدشون اینه که کسایی که مثلا تو زمین هیپنوتیزم فعالیت میکنن آدمای وحشتناکی هن یا عضو این ارفانهای خاص و نوظهور و اینهان که اصلا عجیب غریب خنده داره و این نشون میده چقدر حرف هایی که توی سطح جامعه به بقیه یاد دادمش در موضوعاتی مثل هیبنوتیزم یا علوم دیگه چقدر غیر علمیه و دور از حقیقت این علومه هیبنوتیزم اصلاً علم وحشتناکی نیست علمی نیست که بخواید ازش بترسید و من اتفاقا میخوام بایام هیبنوتیزم علمیه که شما هر روز و هر ثانی از عمرتون از اون استفاده کردید چه حالا آگهانه چه نا آگهانه. و اصلا دارید استفاده زندگی بدون هیبنوتیزم اصلا پیش نمیره تجربه ای از زندگی که در همین لحظه دارید دقیقا برساس هیبنوتیزم شکل گرفته و شما اصلا نمیتونید بدون هیبنوتیزم یک ثانیه زندگی کنید اگه دارید زندگی میکنید مناش اینه که توی سطحی از هیپنوتیزم هستید و هیپنوتیزم هیچ کدوم از اون تصورات که تو ذهنتون دارید نیست هیپنوتیزم یه حالت وحشتناک و ترسناکی نیست که یه سری‌ها میگن مم... از من میپرسم یا می ممکنه که من هیپنوتیزم بشم بعد دیگه ازش بیرون نیام یا یه کسی ایبنوتیز کنم بعد گیر کنه اون تو و بعد, بعد بیرون نیاد. دیگه ترسای اصلا خندهداری هست یعنی میخوام بگم هیچ کدوم از اینا ربطی به هیپنوتیزم نداره. هیپنوتیزم یه علم وحشتناک و ترسناک که شما اینطور نگاه ها رو دارید درباش نیست و جالب وقتی مرور میکنم چیزهایی که در رای هیپنوتیزم شنیدم رو از ازا از, از سوال ارسال شده بسیار شگفت زده میشم. در ادامه به شما دقیقا شرح خواهم داد که هیپنوتیزم چیه و چرا اصلا یه چیز رایش بوده تو زندگیتون. ایتون یعنی هیبنوتیزم علمی بوده که شما هر لحظه و هر ثانیه ازش استفاده کردی توی زن فقط ناگهانه بوده حالا یعنی شما یا کسی هیبنتیزمتون کرده که این هیبنتیزم شدن و کردن میتوند توی مکالمه عادی روزمرده ور شک گرفت باشه و در واقع خیلی از شما همیشه هیبنتیزم شده هستید و حواستون نیست آگاه نیستید و در کل خواهید دید که هیبنتیزم علمی بوده که شما خیلی روزمره و رایج در اون شرکت داشتید بنابراین هیپنوتیزم یه علم عجیب غریب وحشتناک نیست که بخواید ازش بترسید یا بخواید از کسایی که میخوان تو جام هیپنوتیزمتون تون کنن و اینها بخواید بترسید اصلا اینطور نیست